قیبت چند نفر جائزه یه انسان بد ای بدی هست و بدی خیلی مشهور هست و میخواهید که مردم را از بدی او در امان نگه تا مردم دوباره در فتنه او گرفتار نشند این افرادی خیلی بده این قیبتش درسته داخل سیب و قار حدیثی داریم که اونجا شخصی آمد پیش رسول الله صلی صل الله عليه وسلم فرمودند که بیست اخل عشیره خیلی ایسان بدیه است فلانی. دوباره با او هم خوب صحبت کرد و اینجا هم نبی کریم به حضرت آیشه متوجه که آدم خوبی نیست این هنگام شهادت دادن وقتی شهادت میدن باید عیبشو ظاهر بکنه چون اگر عیبو ظاهر نکنه جرم ثابت نمیشه اینجا هم غیبت این هم درسته یا شخصی بود با یک صفت مشهور هست باید صفت خیلی مشهوره اگر اون صفت نگی مردون نمیشون بعضی باید باید نام های مشهور میشن با اون نام رازیم شاید نباشه اما با همون نام شناخته میشه اینجا ها قیبتش ممنون نیست این صحابه اسم زولیدین زولیدین بود اما اسم زولیدین نبود زولیدین مشهور شده بود به همون نام او را صدا میزدن پس این ها غیبتون ها جائزه یا بعضی هسته گناه میکنه اعلان گناه میکنن؟ اصلا از گناه باز نمی آین اگه این هم با همون گناه سدازد اون باز در غیبتش وارده نمیشه داستانی که سریف میکنه واقیر برای شهادت و عبرت اونجا هم اگر از داستان کسی گفت اونجا هم غیبت درون در وارد نمیشه چندین صورت غیبت درونها نمی روید